بینه مرد سلام امیدوارم که تو سال روز نه نو سالگی نوین نانماست حالت خوب باشه کار کردن با تو واقعا لذت بخشه چه تو قسمت کارگری کردن با تو چه تو قسمت صحبت کردن با تو قطعا وقتی با تو کار میکنیم متوجه گذر زمان نمیشیم و خستگی رو نمی فهمیم با توجه به اینکه 20 بیستی سالی با هم اختلاف سن داریم همیشه کار کردن با تو بعضی جاها برامون خجلات آور بوده ما خسته شدیم و تو ادامه دادی و این نشان از تعهد و مسئولیت وزیری تو نسبت به کاره امیدوارم که تو مرحله اول بیماری پسرت درست بشه و خوشخبر باشی برای همه ما عروسیو می تو به سرت تو سریع و سالم بگیرید و خوشبخت بشه تو زندگیش رو ببینید و مطمئن باش که یکی از نفراتی که همیشه اگر من اینجا باشم یا نباشم اسمش روی ذهن من حک شده و هیچ وقت افتخار همکاری باش فراموشم نمیشه طالب قربانی اول برای پسرت و بعد هم برای خودت آروی سلامتی و سر زندگی امیدوارم که بهتر از قبل و پیشرفتتر از قبل کار ک و هر روز سر حال و غبراغتر بشی و کیف کنی از اینکه داری زندگی میکنی